فصل 5 آن شب وقتی به خانم در وست اک برگشتم یک لحظه ترسیدم چون فکر کردم خانم آتش گرفته. ساعت دوی نیمه شب یک طرف شپ جزیره غرق در نور بود. نوری جادویی روی بوته ها و شعاهای باریک و بلندی روی سیم برق کنار جاده میانداخت. از پیچ که گذشتم دیدم نورها از خانه گتسپیس که سر, تا سر از بالا تا پایین روشن بود. اول فکر کردم که یک مهمانی دیگر بپاست، یک پاش کامل که حالا به قایم باشک و ساردین قوطی رسیده است و تمام امارت را در اختیار بازی کنندگان قرار دادند. اما هیچ صدایی نمی جز صدای پیچیدن باد، در درخت ها که زیر سیم‌ها میافتاد و نورها را خاموش روشن میکرد و خانه غرق نور در تاریکی سوسو میزد تاکسی که به جیر و جیر افتاد و ایستاد دیدم که گتسبی از فضای سبز جلوی خانهاش به سوی من میآید گفتم خونتون شده مثل نمایشگاه جهانی با بیاعتنایی نگاهی به خانهاش انداخت و گفت اینجوری شده داشتم به اتاقا سرک میکشیدم بیا با ماشین من یه سر بریم کانی آیلند خیلی دیره خب چطور تنی با آب بزنیم تو استخرا کل تابستون ازش استفاده نکردم خب من باید بخوابم آه باشه باشه او منتظر بود و با اشتیاقی که نمیخواست بروزش دهد به من نگاه میکرد منتظرش نگذاشتم با چیز بیکر حرف زدم قرار فردا به دیزی تلفن کنم و برای صرف چای دعوتش کنم اینجا با بیخیالی گفت آها خیلی خوب نمیخوام شما رو به زحمت بندازم چه روزی برای شما مناسبه؟ حرف من را این گونه کرد که شما بگید چه روزی براتون خوبه؟ گفتم که نمیخوام شما رو به زحمت بندازم پس فردا خوبه کمی فکر کرد و بعد با بیمیلی گفت میخوام بدم چمنو رو کوتاه کنن هر دو پایین به چمنها نگاه کردیم بین چمنهای تیره تر و خوب رسیدگی شده او و چمنهای شلخته من یک خط تیز ایجاد شده بود. حد زدم منظورش این است که من چمنهایم را کوتاه کنم. خیلی مردد گفت، یه چیز کوچولوی دیگم هست. پرسیدم، میخواید غذیه را بندازیم برای چند روز بعد؟ گفت، موضوع این نیست. دست کم و من منکنان برای گفتن مطلب دنبال کلمه گشت. خب فکر کردم که خب ببین رفیق قدیمی شما زیاد پول در نمیاری نه؟ نه زیاد در نمیارم به نظرم این جواب خیالش را راحت کرد چون با اعتماد به نفس بیشتری گفت حدس میزدم اینطور باشه البته باید منو ببخشی من یک کار کاسبی کوچیک کنار زندگیم دارم یه جور کار جنبی بیدونی که فکر کردم اگه زیاد در نمیاری شما اوراق بهادار میفروشین دیگه <تصفيق> سعی خودمونو میکنیم خب باید برات جالب باشه. البته زیاد وقتتون نمیگیره و میتونی پول خوبی ازش درگیری. میدونی یه کار محرمانه است. حالا میدانم که در شرایطی دیگر شاید این گفتگو نقطه اطفی در زندگی هم میشد اما چون گتسبی به خاطر خدمتی که میخواست برایش انجام بدهم این پیشنهاد را خیلی شفاف و بیملاحظه مطرح کرد چوری نداشتم بجز اینکه قضیه را فیصله بدهم. گفتم دستم حسابی بنده ممنونم ولی نمیتونم کار دیگه انجام بدم آه قرار نیست با ولس هایم رو کار داشته باشین از قرار معلوم گتسبی فکر کرده بود که من از رابط که موقع نهار حرفش شده بود ترسیدم اما به او اطمینان دادم که اینطور نیست کمی صبر کرد تا شاید من حرف دیگری بزنم اما من آنقدر درگیر خودم بودم که میلی به حرف زدن نداشتم پس با نارضایتی به سمت خانه خودش رفت اتفاقات آن شب مرا گیج و سرخوش کرده بود فکر کنم تا وارد خانه شدم خوابم برد و نمیدانم که گتسبی به کانی آیلند رفت یا نه یا اینکه چند ساعت خانهش غرق در نور می درخشید و خودش به اتاقا سرکشی می کرد صبح روز بعد از دفتر به دیزی زنگ زدم و برای چای دعوتش کردم. سفارش کردم. تامو با خودت نیار؟ ها؟ تامو نیار؟ دیزی خیلی صاف و ساده پرسید. تام؟ تام دیگه کیه؟ روز قرار باران شدیدی می آمد. ساعت یازده مردی بارانی پوش در حالی که ماشین چمنزنی را دنبال خود میکشید در خانم را زد و گفت گذبی او را فرستاده تا چمنها را کوتاه کند. این قضیه یادم انداخت که فراموش کردم به پیشخدمت خدمت فنلاندی بگویم که برگردد. بنابراین سوار ماشین شدم به دهکده ایگ رفتم تا بین کوچه خیابانهای خیست دنبالش بگردم و چند تا فنجان بخرم و لیمو و گل. گل ها بلا استفاده مان چون ساعت دو از خانه گتسپی یک گلخانه خانه گل و گلدان رسید. یک ساعت بعد در جلوی باز شد و گتسپی با شلوار فلانل سفید پیراهن نغرهی و کراوات طلایی با استراب وارد شد خسته به نظر می رسید و بیخابی زیر چشمهایش را کبود کرده بود به سرعت پرسید همه چی روبره راهه؟ چمن ها که روبره شده؟ اگه منظورتون اینه؟ با منگی گفت کدوم چمن؟ آ چمن هایات. و به چمن ها نگاه کرد اما با توجه به غیافهش مطمئن بودم که چیزی نمیدید گیچ گفت خیلی خوب شده یکی از روزنامه ها نوشته بود بارون ساعت چهار بند میاد فکر کنم روزنامه یه هر هرچی برای چای لازمه گرفتین؟ او را به آشپزخانه بردم نگاهی سرزنشبار به زن فنلاندی انداخت دوازده کیک لیموی را که از مغازه شیرینی فروشی خریده بودم نشانش دادم و پرسیدم خوبه؟ البته البته خیلی خوبه بعد خیلی مصنوعی اضافه کرد رفیق قدیمی باران حدود ساعت سه نیم بدل شد به مه غلیزی که در آن قطرهای شب شبنم شناور بود گتسوی با چشمانی بی کتاب اقتصاد کلی را ورق میزد و با هر قدم خدمتکار که کف آشپزخانه را میلزاناند از جا می پرید و گاهی زل میزد به شیشه های باخار گرفته انگار آنجا سلسله اتفاقات هیجانانگیز و نامرئی در حال اتفاق افتادن بود بالاخره از جایش بلند شد و با لحنی مردد به من گفت که میخواهد برود خانه پرسیدم چرا؟ دیگه کسی برای چای نمیاد خیلی دیر شده. بعد به ساعتش نگاه کرد انگار یه کار فوری دیگر داشت و نباید وقت را تلف می من که نمیتونم تا شب منتظر بمونم. دیوونگی نکنین هنوز دو دقیقه مونده به چهار در مانده و مستثر نشست. انگار که هلش داده باشم و در همین ضمن از بیرون هم صدای ماشینی به گوش رسید. هر دو از جا پریدیم و من کمی مسترب به حیات رفتم. زیر بوته لخت و آبچکان یاس یک ماشین بزرگ آمد و نگه داشت و از زیر یک کلاه سگوش ارغوانی صورت دیزی نمایان شد و با لبخند سهرنگیز و درخشانش به من نگاه کرد. آه عزیزم اینجا زندگی میکنی؟ موج شورنگیز صدایش شهدی بود که به باران اضافه می شود. پیش از شنیدن کلمات باید با گوشم و بم این صدا رو دنبال میکردم. یک تره از موهای خیصش مانند ردی از رنگ آبی روی گونهش افتاده بود و وقتی کمک کردم از ماشین پیاده شود دستش از قطرات براغ باران خیس بود. به آرامی در گوشم گفت آشدم شدی؟ بر چی وقت تنهایی می اومدم؟ این راز این قلعه است به رانندت بگو یه ساعت دیگه برگرده فردی یه ساعت دیگه اینجا باش سپس با زمزمهی موقرانه گفت اسمش فردیه بنزیلم کاری به دماغش نداره بیخبر از همه جا گفت فکر نکنم چطور وارد شدیم و با نهایت تعجب دیدم اتاق خالی است. بلند گفتم عجیبه چی عجیبه صدای در زدن آرام و موقرانهای آمد و دیزی سرش را به سمت در چرخاند بیرون رفتم و در را باز کردم گتسوی با رنگ و روی پریده عین جنازه در چاله آبی ایستاده بود دستهایش را عین سنگ در جیبهای کتش فرو کرده بود و زار و نزار به چشمهای من زل زده بود با همان دستهای توی کت همراه من وارد خانه شد بعد این برق گرفته ها پیچید به اتاق نشیمن به هیچ وجه خنددار نبود من که صدای تاپ تاپ قلبم را می‌شنیدم در را بستم به روی بارانی که داشت تند می شد. تا نیم دقیقه هیچ صدایی نیامد بعد از اتاق یک نوع زمزمه خفه بلند شد و یک خنده نیمچه و بعد صدای دیزی که حالت تصنعی صافی داشت خیلی خوشحالم دوباره شما رو می بینم. بعد وقفه که به شکل افتضاحی طولانی بود. کاری توی حال نداشتم و رفتم به اتاق نشیمن. هنوز دستهای گتسپی توی جیبهایش بود و با تظاهر زورکی به اینکه راحت راحت است تکیه داده بود به پیش و سرش را انقدر عقب کشیده بود که به ساعت از کار افتاده پیش بخاری گرفته بود و چشمهای آشفتهش را دوخته بود به دیزی که هراسان اما با وقار لبه یک صندلی. سخت نشسته بود. گتسپی زیر لب گفت، ما همدیگر میشناسیم. چشمهایش یک لحظه به سمت من برگشت و لبهایش برای خندیدن از هم باز شد. ولی تلاش بیفایدهی بود. خوشبختانه ساعت زمان خوبی را برای کت شدن انتخاب کرد. بر اثر فشار سر گتسپی ساعت به شکل خطرناکی کت شد. البته گذبی بلا فاصله برگشت و ساعت را با انگشتان لرزانش گرفت و دوباره سر جایش گذاشت و بعد سیخ روی کاناپه نشست و آرنجش را به دسته آن داد و چانش را در دستش گرفت. گفت، بابت ساعت متاسفم. صورتم گریه گرفته بود. این آفتاب سختگی مناطق گرم سیر و نمی توانستم از هزار حرف پیش پا افتاده یکی را در ذهنم پیدا کنم. خیلی احمقانه گفتم ساعتش قدیمیه. انگار همه باورمون شده بود که ساعت روی زمین افتاده و خرد شده است. دیزی با صدایی که تا جایی که میشد بی حالت بود گفت خیلی سال هم دیگر رو ندیدیم. نوامبر که بیاد میشه پنج سال. جواب غیر ارادی دست کم یک دقیقه دیگر همه را به سکوت فرو برد. به نظرم رسید پیشنهاد بدهم هرسه برای آماده کردن چای به آشپزخانه برویم تا از این وضع بحرانی نجات پیدا کنیم که پیشخدمت فنلاندی مثل جن با سینی چای وارد شد. گرماگرم گرم آمدن فنجان ها و کیک ها خوبی بود. گتسفی خودش را کنار کشید و وقتی من و دیزی با هم حرف میزدیم با با چشمهای بیقرار و غمگین با دقت و وسواس نگاهش را به نوبت بین من و دیزی می چرخند. با این حال چون هدف تنها ایجاد آرامش نبود در اولین فرصت عذری آوردم و از جا بلند شدم که گذبی بلا فاصله با نگرانی پرسید کجا میرید؟ <تصفيق> زود بر قبل از اینکه برید میخواستم در مورد یه چیزی با شما صحبت کنم و آشفته تا آشپسخانه پشت سرم آمد در را بست و با درماندگی زمزمه کرد <تصفيق> وای خدا چی شده؟ در حالی که سرش را به این سوانسو تکان می داد گفت اشتباه وحشتناکیه اشتباه وحشتناکیه با اطمینان خاطر گفتم فقط دستباچه شدی و خوشبختانه اضافه کردم دیزی هم خیلی دستباچه شده حرفم را با تردید تکرار کرد اونم دستباچه شده درست این خودت انقدر بلند حرف نزنین خیلی کلافه گفتم اینه پسر بچه رفتار میکنیم و تازه خیلی هم بی که دیزی رو همینجور تک و ول کردیم تو اتاق. دستش رو بلند کرد تا دیگر چیزی نگویم. بعد نگاه سرزنشباری به من کرد و با احتیاط در را باز کرد و برگشت به اتاق. من هم از در پشتی رفتم بیرون. همان دری که نیم ساعت پیش گتس از آن بیرون رفته و با استراب خانه را دور زده بود. به سوی درخت سیاه گره خوردهی دویدم که برک های انبوهش مثل چتری جلوی باران بود. باز باران میبارید و چمن ناهموار خانه که باغبان گتسبی به خوبی کوتاهش کرده بود پر از باطلاقهای کوچک گلالود و مندابهای عهدبوغ در مقیاسی کوچک شده بود. از زیر درخت بجز امارت بزرگ گتسبی چیزی برای تماشا وجود نداشت. بنابراین، مثل کانت که به برچهای مخروطی کلیسا خیره شده بود، من هم نیم ساعت زل زدم به خانه گتسبی ده سال پیش، زمانی که تب ساختن خانه های سبک تاریخی داغ بود، یک آب این امارت را ساخته بود و می حاضر بوده پنج سال مالیات خانه های اطراف را بدهد به شرطی که آنها سقف خانهشان را پوشال کنند. شاید نپذیرفتن پیشنهادش توسط روستایی ها باعث شد که از خیر تأسیس خاندان و دودمان بگذرد و خیلی زود به نابودی کشیده شد. هنوز حلقه سیاه ازا روی در امارت بود که بچه هایش خانه را فروختند. آمریکایی ها گهگاه با شور و شوق حاضرند نقش رعیت را بازی کنند ولی به هیچ عنوان زیر باهر دهاتی بودن نمی روند. بعد از نیم ساعت دوباره آفتاب شد و ماشین خاربار فروشی با خرید شام خدمتکارها پیچید جلوی پارکینگ گتسبی. احساس کردم که او آن شب یک قاشق قضا هم نمی خورد. یک مستخدمه شروع کرده بود به باز کردن پنجره های طبقه بالایی خانه و هر لحظه در یک پنجره پیدایش می شد و یک دفعه از پنجره وسطی دلا شد و متفکرانه توف کرد توی باغ. وقتش بود که برگردم، وقتی باران می بارید انگار پچپچه های آنها پیچیده بود توی فضا و کمابیش و با غلیان احساس اوج می گرفت. اما با ساکت شدن فضا احساس میکردم خانه را هم سکوت فرا گرفته است رفتم تو البته بعد از اینکه هر سر و صدایی که میشد در آشپزخانه را انداختم و کم مانده بود اجاق را هم برگردانم اما فکر نکنم چیزی شنیده بودند نشسته بودن دوسر کاناپه و طوری به هم نگاه میکردند که انگار سؤالی مطرح شده یا در حال مطرح شدن است و دیگر سر سوزنی هم از آن استراب اولیه باقی نمانده بود. صورت دیزی پر از عشق بود و وقتی وارد شدم از جا پرید و مقابل آینه با دستمال عشقهایش را پاک کرد. اما تغییری که در گتسبی ایجاد شده بود حیرتاور بود. به معنای واقعی کلمه گرگ گرفته بود. بدون یک کلمه حرف یا رفتاری سرخوشانه، خوشی خاصی از وجودش ساطع میشد که در کل اتاق پراکنده بود. انگار سالها مرا ندیده باشد گفت، ها سلام رفیق قدیمی. یک لحظه فکر کردن میخواهد با من دست بدهد. بارون بند اومده. آه راستی؟ وقتی فهمید درباره چه حرف میزنم، وقتی فهمید دو نقطه نورانی در کف اتاق برق می مثل کارشناس هواشناسی لبخند زد مثل مشتری پرپاگورس نور برگشته و خبر را برای دیزی بازگو کرد از نظر چیه؟ بارون بند اومده خوشحالم جی همجراش پر از زیبایی دردآوری بود که خبر از خوشی غیرمنتظرش میداد گتسلی گفت بلان بریم خونه ای من میخوام این دو رطف و نشونه دیزی بدم مطمئنی میخوای منم بیام آره رفیق دیزی رفت طبقه بالا که صورتش را بشوید و خجالت کشیدم که دیر به یاد هول هایم مفتادم. منو و توی چمنها منتظرش بودیم. گتسفی گفت خونم خوشگله نه؟ ببین که جوری عرصه برش نور میگیره؟ تأیید کردم که خانهش مجلل است. آره، چشمهایش روی خانه میچرخید به تک تک درهای تاغدار و برچهای چهار گوشش. فقط سه سال طول کشید که پول خریدنش رو در بیارم فکر میکردم ثروت تو ارث بردی بی هوا گفت رسیده بود رفیق ولی بیشترش رو تو وحشت بزرگ از دست دادم تو وحشت جنگ به نظرم خودش هم نمیفهمید چه میگوید چون وقتی پرسیدم کاروبارش چه بوده جواب داد خودم میدونم و وقتی متوجه شد که جواب درستی نداده برای جبران گفت خب تو کارهای مختلفی بودم، اول کار دارو بعدم کار نفت، اما الان تو هیچ کدوم اینا نیستم، بعد با دقت بیشتری نگاه هم کرد و گفت، منظورت اینه که به پیشنهاد اون شبم فکر کردی؟ قبل از اینکه جواب بدهم، دیزی آمد بیرون و دو ردیف دکمه های فلزی لباسش زیر نور آفتاب برق زد و در حالی که امارت را نشان می داد، گفت، اینه؟ این خونه بزرگه؟ خوشت میاد؟ دوستش دارم اما نمیفهمم چطور تک و تنها توش زندگی میکنی؟ همیشه پرش میکنم از آدمهای جالب روز و شب، آدمهایی که کارهای جالبی میکنن، آدمهای معروف. به جای اینکه از راه میانبر تنگه برویم، به سمت جاده رفتیم و از در بزرگ وارد امارت شدیم. دیزی با پچپچههای های زیبا این طرف و آن طرف این آسمان آسمانخراش فئودالی را تحسین میکرد. باخها را، رایه شاد گلهای نسرین را، بوی فرار شکوفه های زالزالک را، شکوفه های آلو را و رایه ملایم پیچک چینی را، همه و همه را تحسین کرد و ستود. خیلی عجیب بود که پا روی پله های مرمرین بگذاری و لباس های شب مجلل را نبینی که از در میروند و میآیند و صدای جز آواز پرندگان در لاولای درختان به گوش نرسد. در امارات وقتی سلانه سلانه از تماشاخانه ماریان و سالن‌های رستوراسیون رد می شدیم، حس میکردم که مهمانها پشت هر کاناپه و میزی قایم شدند و دستور دارند که تا وقتی ما رد نشده نفسشان در نیاید و همین که در کتابخانه مرتن کالج را بست، میتوانم قسم بخورم که صدای آن مرد اینک جغدی را شنیدم که ناگهان مثل شبه زد زیر خنده، رفتیم طبقه بالا به اتاق قدیمی که پوشیده از ابریشم‌های سرخ و بنفش بود و سرزنده از گل‌های تازه همینطور انواع رختکن و اتاق خلوت و اتاق بیلیارد و دستشویی و حمام که وان آنها پایین تر از سطح زمین کار شده بود و بعد وارد اتاقی شدیم که در آن مردی با سر و وضع نامرتب و پیژامه روی زمین دراز کشیده بود و داشت نرمش مخصوص کبد می‌کرد این مرد همان آقای فلیسپرینگر خانزات بود. آن روز صبح او را دیده بودم که بیتاب در ساحل قدم میزد و سرانجام رسیدیم به آپارتمان شخصی گتسپی. یک اتاق خواب و یک سرویس بهداشتی و یک اتاق کار به سبک آدم. آنجا نشستیم و یک گیلاس نوشیدیم که گتسپی از گنجه توی دیوار درآورده بود. یاصبی لحظه چشم از دیزی بر نمی‌داشت و به نظرم همه چیز خانهش را از دید چشم‌های دوست داشتنی دیزی دوباره ارزیابی می‌کرد. گای هم گیج و منگ به اموالش می می‌شد. انگار در حضور واقعی و شگفت‌آور دیزی هیچ کدام از آنها دیگر واقعی نبود. حتی یک بار نزدیک بود از پله‌ها بیفتد پایین. اتاق به خودش ساده‌تر از بقیه اتاقها بود. فقط روی دراورش با یک دست لوازم آرایش از طلای ناب مات تزئین شده بود. دیزی با شور و شوق برسی برداشت و شروع کرد به شانه کردن موهایش و گذفی هم نشست و دستش را سایبان چشم کرد و خندید. با خنده گفت خیلی خنده داره من نمیتونم وقتی سعی میکنم که گتسوی آشکارا از دو مرحله عبور کرده بود و داشت وارد مرحله سوم میشد. بعد از آن ترس و استراب و آن سرخوشی نامعقول حالا در شگفتی حضور دیزی فرو رفته بود. او سالها به فکر این ساعت بود و از اول تا آخرش را در رؤیا دیده بود و با شدتی وصف ناپذیر برای چنین لحظه دورخیز کرده بود و حالا مثل ساعتی که بیش از حد کوک شده باشد فنرش در حال در رفتن بود. یاتزی خیلی زود به خودش مسلط شد و در دو کمد بزرگ را که جلوی چشم بود باز کرد. انوا و اقسام کت و شلوار، لباس منزل، کراوات و پیراهن‌هایی که مثل آجر دو جین دو جین روی هم چیده بودند. یه نفر تو انگلیس دارم که برام لباس میخره اول حرف هست. یعنی هر بهار و هر پاییز برام گلچین میکنه و می‌فرسته. یک کپ پیراهن بیرون آورد و یکی یکی آنها را انداخت جلوی ما. پیراهنهایی از نخ نازک و ابریشم ظریف و فلانل اعلا که وقتی روی میز می تایشان باز نمیشد، رنگ به رنگ روی میز پخش و پلا شده بودند. در حالی که ما از لباسها تعریف می کردیم گتسپی بیشتر و بیشتر لباس میریخت به طوری که کپه های لباسهای نرم و اشرافیش بالا و بالاتر میرفت. پیراهن راه راه، ماری و شطرنجی به رنگ مرجانی، رنگ سیب سبز، ارغوانی و نارنجی کمرنگ با گلدوزی حروف اول اسمش که با رنگ نیلی روی لباس دوخته شده بود ناگهان با صدایی عصبی دیزی سرش را در پیراهن فرو برد و گریه بلندی سر داد این پیران خیلی غشنگن کنان در حالی که صدایش میان آن چین و واچین های زخیم خفه میشد گفت غمگینم میکنم. غمگیم میکنه. چون هیچ وقت همچین پیرنو قشنگی ندیده بودم. بعد از امارت قرار بود باغ و استخر و هواپیمای آبنشین و گلهای اول تابستان را ببینیم اما پشت پنجره های خانه گتسوی باز باران شروع شده بود و به همین خاطر ماندیم کنار هم و به سطح آب مواج تنگه نگاه کردیم. گتسپی گفت، اگه مهنه بود میتونستیم خونه شما رو اونور خلیج خریج ببینیم. شما هر شب یه چراغ سبز انتهای اسکل روشن میکنین. ناگهان دیزی بازویش را به بازوی گتسپی انداخت، اما او انگار هنوز غرق حرفی بود که زده. شاید به این فکر میکرد که اهمیت آن نور سبز برای همیشه در نظرش محو شده بود. در مقایسه با آن فاصله بزرگی که بین او و دیزی جدایی انداخته بود، این نور خیلی به دیزی نزدیک بود، حتی داشت لمسش میکرد. این نزدیکی مثل نزدیکی یک ستاره بود به ماه. حالا باز هم نور سبز در اسکله روشن شده بود، اما یکی از افزونهای گتس کم شده بود. کمی در اتاق قدم زدم و در آن فضای نیمه تاریک چیزهای نامعلوم متنوعی را وارسی کردم. یک عکس بزرگ که روی دیوار بالای میز تحریرش آویزان بود نظرم را جلب کرد. مردی مسن در لباس قایق سواری. این کیه؟ اون آقای دانکودی. اسمش به گوشم آشنا بود. الان مرده. سالها قبل بهترین دوستم بود. یک عکس کوچک از گتسپی هم در لباس قایق سواری روی دراور بود که در آن جسوران سرش را به عقب برگردانده بود و به نظر می در سن 18 سالگی گرفته شده. دیزی گفت دوستش دارم موهای بالا زده هیچ وقت نگفته بودی موها تو بالا می زدی یا اینکه قایق داشتی؟ گتسپی بلا فاصله گفت اینو ببین اینجا یه عالم بریده روزنامه است همش در باری توه. آنها کنار هم ایستادن تا روزنامه‌ها را رو وارسی کنند. میخواستم خواهش کنم یاقوت‌هایش را هم بیاورد که تلفن زنگ زد و گتسبی جواب داد. بله؟ خب الان نمیتونم حرف بزنم. نمیتونم الان حرف بزنم رفیق. گفتم یه شهر کوچیک خب باید بدونه که شهر کوچیک یعنی چی. خب اگه فکر میکنه دیترویت شهر کوچیکیه پس به درد ما نمیخوره. و تلفن را قطع کرد دیزی از کنار پنجره فریاد زد بوده بیا اینجا هنوز باران میآمد اما در سمت غرب تاریکی دو نیمه شده بود و روی دریا یک توده بزرگ از ابرهای صورتی و طلایی درست شده بود دیزی به زمزمه گفت اینا نگاه و بلافاصله اضافه کرد دوست دارم یکی از اون ابرهای صورتی رو بگیرم تو رو بذارم تو هولت بدم بری سعی داشتم بروم اما آنها رضایت نمیدادند. شاید حضور من باعث میشد با هم بودنشان موجهتر به نظر برسد. گتسپی گفت: فهمیدم چیکار کنیم؟ میگیم کلیپ سپرینگر برامون پیانو بزنه. گتسپی در حالی که داد میزد یوینگ از اتاق رفت بیرون و چند دقیقه بعد به همراه مرد جوان مضطربی که عینک فریم صدفی و موهای کوتاه بلوند داشت به اتاق برگشت. مرد یک دست لباس ورزشی مرتب پوشیده بود که یقش کمی باز بود. کتانی پایش بود و شلوار نازک تیره رنگی هم به پا داشت. دیزی معدبانه پرسید مزاحم تمرینتون شدیم؟ آقای کلیپ سپرینگر که حسابی دست پاچه شده بود با صدایی شبیه به ناله گفت خوابیده بودم یعنی اون موقع خوابیده بودم بعدش بیدار شدم. گتبی حرف او را برید. کلیپ سپرینگر پیانو میزنه. مگه نه یوینگ؟ رفیق قدیمیان؟ خب، خب نمیزنم. یعنی به ندرت پیانو میزنم و هرچی میزنم بدون تمرینه. باز گتسپی حرفش را قطع کرد. بریم پایین. کلید برق را زد و با غرغ نور شدن خانه پنجره های خاکستری معف شدند. در تماشاخانه خانه فقط تک چراغ کنار پیانو را روشن کرد. سیگار دیزی را با دستی لرزان روشن کرد و آن سر اتاق روی کاناپه پیش او نشست. جایی که هیچ نوری نبود مگر انعکاس نور سرسرا روی کف اتاق. وقتی کلیپ آهنگ آشیانه عشق را میزد نگاهی به پشت سرش انداخت و دنبال گتسبی گشت. گشت. میبینید که همش بی تمرینه. گفتم که نمیتونم بزنم. تمرین ندارم. گتس با تحکم گفت. اینقدر حرف نزن رفیق، پیانو بزن، در صوبگاهان، در شامگاهان، دلمان خوش نیست. بیرون صدای باد بلند شده بود و صدای رعد خفیفی از تنگ به گوش می رسید. حالا دیگر همه چراغهای وست اگ روشن بود و قطارهای برقی پر از مسافر نیویورک زیر باران به سوی خانه می آمدند. ساعت دگرگونی آدم ها بود و شور و هیجان در هوا موج میزد. فقط همین یه نکته است که حقیقت داره. پولدارها پولدارتر میشن و بی پولها بچه دارتر. در این بین، در این حین. وقتی برای خدافزی رفتم، حالت حیرت به چهره گذبی برگشته بود. انگار رگههایی از تردید در مورد کیفیت این سعادت در او پیدا شده بود، نزدیک به پنج سال، بدون شک در همین بعد از اور هم لحظاتی بوده که دیزی با چیزی که در رؤیای گتسبی بوده فاصله داشت. ای فاصله که نه به دلیل ایراد دیزی، بلکه به خاطر شور و خیال گتسبی ایجاد شده بود. تصورات گتسبی از دیزی و از هر چیزی فراتر رفته بود. گتسبی خودش را با شور و شوقی حد و مرز در این تصورات قرخ کرده بود، و آن را با هر پروبال و بال رنگینی که سر راهش قرار گرفته بود تزیین کرده بود. هیچ بارغه آتش یا هیچ تراوت خونکی توان برابری ندارد با آنچه که انسان میتواند در قلب شبه گونه خود ذخیره کند. همین که نگاهش کردم کمی به خودش مسلط شد. دستش در دست دیزی بود و تا دیزی چیزی در گوشش زمزمه میکرد با شدت و هیجان به سویش میچرخید. فکر کنم که آن صدای مخملین با آن فراز و فرودش و با آن گرمای تبدارش بیشتر از هر چیزی گتسبی را اسیر خودش کرده بود چون نمیشد فراتر از آن را در رؤیا تصور کرد صدای دیزی آوازی بدون مرگ بود آنها مرا از یاد برده بودند با این حال دیزی سرش را بلند کرد و دستش را به سمت من گرفت اما گتسپی گویا مرا نمی شناخت یک بار دیگر به آنها نگاه کردم آنها هم به من نگاه کردند، اما از دور دست گرفتار تلسم شور بی امان زندگی بودند از اتاق زدم بیرون و از پله های مرمرین رفتم زیر باران و آنها را با هم تنها گذاشتم